See, you about. Getting out of the life set the corporate world on its ear What the fuck you gonna do? Except how key to to send to همونده غرق غم تو عشقاش با زن با بچه زف و کوله بار هست پشت رله پرشه سواره یکی تو جشن قصه نداره تو درد سر اونی که سهم نفت تو که نداره آب میشه اون نگاش وقتی پول گاز نداره بریزه به دوست داره بره تو پور خاک نه چجوری من میتونم به تو حق بدم که تو شهر من بگینمونده فقر و چه چجوری مرد بتونم بهت بگم که حلقه زد چجوری جوری و درد گردنش مرد دار زد خودشو دنیا رو به پارسد کاف شدم بس که دیدم آفت خدا چرا تو کوش یه بار به ما نشونه بده به ما یه بار دریاب تو درد ما این درا رو بشکاف به سوی خنده کن به من بهشت و اثبات که باور نداره اون جمهوری اشغال نصف تنش خفته سرطان هیوا بچه سر راه هی از پشت پلکاش میکنه بوی گند و استشمان اونی که تو شهر را دیده فرق و فقر و استجباه ببین مجبور بزار کلیش و فروشون که از شهار مرد دست به نزول زیر دندونه تیغ زیر حلق و گلوش میگه پشیمونه ولی حیف زمان کرده حبور از قتل سر سرکاره دیگه به بدون نداره اونی که بار رو کوله سوار کل پول تو بانکش هزار فرش نیست زیر پاش نه هی میده آب صف با اینا لرکی میرسه میکشه زیر پا فت فت, فت, فت. انگار مردن همه تو چرته کلن همه گرگه بهرو خوردن محبت ها رو کشتن همه رو حرف هام سنده نخبن تو زخف زدن از پشت زهر کیه که بگه به من تو کله سلطلبه خدایا یکی هم از دردامو بردار از دنیامو انداز تو دریا گم خدایا خدایا میشنبی حرفامو اخمامو بردار از جهرم بشه خند فردام میخوام بخنم در رو به روغم ببندم میخوام شادشن همه لب ها فردا بخنن میخوام ببینم من دیدم که بدیده است با اونی که فقر درد از بری